بسم الله الرحمن الرحیم کلاستو استاد فرحانی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فضل الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد طیبین الطاهرین المعصومین مولانا زین العابدین علیه السلام خدا را شاکریم که توفیق پیدا کردیم در این برنامه ارزشمند که انصافاً برگزاری این گونه دورهها مخصوصاً با این عنوان یعنی بحث روش شناسی اجتهاد اون هم اجتهاد شاگردان حضرت امام و مدرسه فقهی و قصوری که امام وزاده الله تعالی تحصیل فرمدن علم خصوص روش فقهی و اجتهادی و مخصوصا مبانی و رهبر و مرجع بزرگوارمون حضرت آقا خدمتگذار باشیم. مسئله پیگیری مبانی فقیه امام خدا سرور عزیز و بزرگوارمون هم اشاره کرده ما در این بحث سده حوزه به پیشنهادی را به جامعه محترم مدرسین و شورای عالی حوزه با موافقت و عرافی مدیر حوزه دادیم که برای بزرگداشت داشت مقموماش قبل کریمه بجاست در کنار برگزاری یک جلسه از درباره بزرگداشت ایشون و معرفی آثار فقیهی اصولی ایشون که الحمدلله بسیار متنبعه و ایشان آقا ماه امسال هم برگزار میشه یه بحثی رو تحت عنوان دستاوردهای خوزی علمی قول ارابه کنیم حدثم اونم این بود که من باشه عبدالکریم اصطاد امام بودم و آقا زاده بزرگ, بزرگ بارشون آی آشق محتضا اصطاد هست آقا و عملا امامین انقلاب ما از این بیت ارتزاق فقهی و اصولی کردن هم امام در بحثای فقهی و اصولیشون هم آقا در بحثاشون و در اون دوره تکبون علمیشون خیلی در واقع استفاده کردن از این بیت عظیم این شن الحمدلله شورای عالی و جامعه مدرسیم هم تذیره در مقامه خدمت آقا استفادهشون شدیشونم تعیید فرمودن این کار رو مدتی هم هست که ما خودمون تو حوزه دنبالیم یه بحثی را تحت انبال فقه خود خمینی حتی مدرسه ای ما با این عنوان را اندازی کردیم ترخون، الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم آقا با استعداد دارن به جهت که اصرار داریم که شناخت مبانی فقهی و اصولی امام و حضرت آقا و حالا بعضی دیگه از ترامزه امام مثل شهید و ترحلیه مثل اصطای مزرگیبار و الله مصفاح مثل اصطایت الله جمادی اینها مؤثره در رشد حوضی امتلاعه یعنی واقع مسئله اینه که اگر کسی با مبانی اصولی و فقهی امام معنوس نباشه و مسلط نباشه برای این مبانی عملا ارتضاق علمیش از این مسیر علمییه دیگری شکل بگیره، سر جای کار خلاصه ممکنه ما اون تو باورش اجهای شد به مه به باید یه چیزی رو یاد بگیره و بدان نظام فکری و اصولی امام نظام بسیار بسیار عرضشمند و مؤثری است و یکی از بهترین کسانی که این نظام را در واقع شرح دادن استادن و پیگیری کردن حضرت آقاست من در دو بخش این کارهایی رو که حضرت آقا نسبت به استادشون حضرت امام در این منظومه فقهی و اجتهادی امام پایگیری کردم میخوام یک مختصر مقدمه ای عرض کنم بعد وارد خود محتوا بشه چون بسیار این مقدمه در فهم محتوا مهمه حالا شادم رزق ما شد دیگه این جلسه جلسه اختتامیه این دوره است شما ملهم دولتا فضلای بزرگوار اساتید بزرگواری در ابعاد مختلف این بحث قطعاً حضور کرده حالا این نگاهی هم که سعی میکنیم خدمت آقایان و سروران عزیزمون منتقل کنیم شاید کمک بکنه به مجموع و در واقع شما منظم کردن این مجموعه آقا دو تا بحث خیلی مهم نسبت به حضرت امام نزمان الله راه تعالی علیه دارن که هر دو بحثشون رو به نظر ما خود ایشون تو منظومه فقیهی و بوسیودی و روش اجتهادیشون منتظر. یعنی اینکه ما می‌خوایم روش شناسی اجتهاد آقا رو بحث کنیم، اینا است که خدا برای امام یعنی استادشون قائله. نکته اولی که ایشون برای امام رضوان الله تعالی علیه قائلا اون تسلط بسیار بسیار از اساسی امام بر آراء بزرگان حوزه است. از من اونها این نکات خیلی حساسم که حوزه بدانه که اگر کسی یک خلاصه در یک حوزه انقلابی حرکت میکنه معنای حضور در حوزه انقلابی این نیست که اون مبانی و مسلل نیست. آیا تعبیری دارند درباره امام جمعه خیلی قشنگی دارن امام که آقا دارن نقد نظریات اصولی آیت الله توسط تحسط امام تحبیرش اینه که در موارد بسیاری امام مبانی بزرگان طبل از خود را خورد کرده و معنای جدیدی به جای آنها گذاشته. صاحبان فکر باید بتوانند اندیشه خود را در محیط تخصصی بدون خوچیگری بدون عوام فریبی و جنجال تحمیلی و زیادی مطرح کنم و آن نقادی شود. امام آن وقت که در قوم تشریف داشتم در درس اصول نظریات مد روز را که نظریات من محیط الله بود ذکر میکردم بعد فیه اولم و ثالثا و انخواست اساس حرف را اصلا به هم میرهدن. تقریرات امام در بعضی از بخش ها چاپ شده است. شما نگاه کنید که در موارد بسیاری امام مبانی بزرگان قبل از خود را خورده کرده. لازم ما الان تو کار فقی خودمون و کار اصول خودمون تزمیم. بگیم که میخواد با مبنای امام، رهبری در فلان مسئله رسولی آشنا بشه باید مسلط باشه که محقق این رو گفته مقرل بزرگه ها یشون محقق رو گفته معلوم آقا زیا این رو گفته شهید بزرگوار ها الله سر مثلا این رو بود که الان من نمونهاش عرض میکنم تو بیانات آقا بر همینان تطبیق میدیم ببینید چون اینا رو ببینیم اینا التضامات آقاست و آقا یه تو درست بعدا از اصالی جه بگم بگن تو چارچوبش رو داشته باشید این یک مسئله مهمه لذا خدا واقعا حفظ کنه این نکته رو دا تأکید دارن که ما وقتی میگیم یک کسی مسلط به مقنوع فقهی و اصولی امام و رهبریه محوش نیده که این مقنوع رو نسبت با تمامه مقانی مد قول آقا روز خوز مسلط میدونه مرموم آقا چی گفته میدونه مرموم ناینی چی گفته و نصفت فرمایش ما رو با مرموم آقا زیاد ما داشتم با آجابا عرض می کردم خدا رحمت کنه مرموم ایت الله یزدی را از ما دعوت وقت در از مهم به قوم بحث خلد و دست رو. من با ایشو کردم که چی بگم گفت خلل ایمان خیلی استفاده خداوی آموزه این محبوبه چقدر بسیر و دقیق او خلل ایمان رو رفتیم خلل ایمان رو وقت بکنیم به ما گفتن آقای جا مدهی زیاد داره آج آقا بابر کنید ما وقتی می‌خواستیم محص خلل رو شروع کنیم جلال هم تقریباً اینکه دو داره بیرون میاد اول مطالب مثلا محقق نظرات بسیار ارزشمندی شد در موسوعه در جلد هجده گفت بعد نظرات مرا مشعبدالکریم رو گفت بعد اما هاشم بن در دوره و در کتاب و صلاح خبر خوبی بيدارم وقتی آقایون نسبت فرموشات هاشم عبدالكریم رو با تحقیق خوبی بررسی کردن دیدن فرموشات آقای خوبی در آقای هاشم عبدالكریم همه فرموشات آقای خوبی رو پوشش بعد نظرات امام بود که کنارش دیگن خیلی برای بعضی عجیب بود. که امام اینقدر امیق فقه سنتی جواهری داره حوزه را تا این امت تو خلال تو آخرین اثر تعریفی امام در فقه بسته. بی با این رو اصرار داریم. به نظر ما آقا ایتو. حالا میگم خدمتون آقا تو قناه هم کارد. پس نکته اولی که ما در ارتباط با متد اجتهادی فقی و اصولی امامین انقلاب داریم این تسلط بر مبانی بزرگان فقه و اصول حوزه خرد کردن نقد کردن و به وجود آوردن اینکه حرف نو تو همین فضا عزیزان بزرگوار حالا ما با تدبیر در در آقا این درس کتاب قنا آقا رو شروع کردیم تو خون درس کردیم باور کنید تو ابتدای این کتاب وقتی خواستم شروع کنیم درس بدیم این دو تا نگاه رو من گذاشتم کنار آقا ف, ف... فزلا. خیلی براشون عجیب گفتم امام دو تو شاگرد داشتید حالا دیگه کلاسای خودمون رو دیگه میتونیم درس تو ده تا مقدمه به امام حازی مشتهد قدی مورد اعتماد علمی خب مروای قدیری میدونید یه نامه‌ای به امام نوشتن یه نامه‌ای به امام نوشتن و به امام عرض کردن که خلاصه من نمی نمیبینم شما موارد بعضی از مسائل بشید و این با اون جایگاه قدسی شما سازگار نیست تعبیر آی قدیری جالبه من اصرام داشتم اول بحث قناه این دو تا نگاه رو شما ببینید تا جایگاه اجتهادی آقا معلوم میشه خوب ببینید آقا آی قدیری نوشتن با عرض سلام و ادب قدمت امام قدمت حضرت مستقا آیت الله الاز از ما امام خمینی مدزده خود آقی با عرض سلام و ادب نامه آی قدیریز به امام دو استفتای منتشر شده که یکی از خرید یکی در, خرید از در یکی از خرید, خرید و فروش آلات لح سوال شده و در جواب آمده فلان فیره من محتوى رو کار ندارم در دیگری بخص شطرنجی بود بعد ایشون پیش بکنم به امام که خلاصه من این کار کردم رفتم اینها رو بردسیر کردم بعد هم در هر صورت اگر صحت قدس حضرت آلی از این گونه مسائل بدون باشد به نظر من لیه است. امام به مرم خدیری قدیری جوابش با عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد و جواب این جانب است از برداشت جناب و عالی از اخبار و احکام الهی اصحار تحصیح آهای امام بای قدیریشن بنابرای نوشته جناب و عالی زکات برای تنها برای مسرف فقرا و سایر اموریست که ذهرش رفت و اکران که مسارد به سطحا مقابل آن رسیده راهی نیست و ریهان در سق و رمایه مختص است به و, کمان و اصف دوانی و امثال آن که در جنگهای سابق به کار گرفته می شود و امروز هم تنها در همان موارد است و امثال که بر شیعیان تحلیل شده امروز هم شیعیان می توانند هیچ مانه با ماشینهای کزایی جنگلگها را از بین ببرند و آنچرا که باعث حضر و سلامت است را نابود کنند. و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازن و هیچ کس هم نداشته باشد مانع آنها باشد. مناظر و مساجدی که در کشی ها برای حل مبزد ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است نباید تخریب گردد و امثال آن به جمله آن آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود. و مردم که خونشین یا برای همیشه در سحرها زیدیم ببین شاگرده چندین سال درستانده امام فقیه مقرب شن از مقراره خوب به ما خودمون داریم الان به می دیگه چند ساله از تقریرشون خیلی استفاده بگم های خوبی هم اون اما نگاهش آقا تو مقدمه بحث قناه همین شما رو به خدا آقا تو مقدمه بحث قناه یه بحثی دارن که امام رزبان الله تعالی علی که یک بار به سران قواه فرمودن که این صوت اگر از مثلا صدا و اسمی جمهوری اسلامی بیاد حلاله اگر از یک کشور دیگه بیا. حالا امام تو فرمایشاتش عربستان رو گفته بودن یا آقا که دست اسمی برده خرامم بعد آقا میگن تو اول درس قناع دارم ببینید حتما کتاب قناع رو ببینید آقا میگن ما فکر میکردیم این امام اینو خصوصی گفته بعد قاملیم به یک از پاقه های شورایی بگه ابان برای اجوردهای و علاقه داره این بخص علمی پیگیری بشه بعد خدا آقا میگن اول آدم یه استفقاده میکنه یه ممکنه یه صوتی که رسانه حلال باشه، توی رسانه حرام باشه. میشین نبرای دلده در بود. آقا تو کتابه ما شده ثابت میخوام شما ما یه هفتاد یا سر همین فضا. ببینید دوتا شاگر داره اینا. یه شاگر دید آقا صفت میسته با متون فقه اجتاهایی خاله عرضی میخواد از اطوال اصفالش از امان بفرد. یه شاگر دیگه یه کسی برمان تدار قدیری که به امان میدیدید ساعت قدسی شما بدور از اینکه که این بحثا بارد حالا من میخوام مسئله قنار را یا مسئله شرطرنج رو یا مسئله خرید و فروش رو. مثلا بعضی از آلات را تو هم بحث چطوری حالا کنم؟ حالا عرض میکنم بعد میبینی تو جنبندی ملازم میکنم ببینی ما عرضمون اینه آقا این نگاهی داره میگه امام آنستان رو راه تعالی علیه وقتی بارد بحث قنا شده یا وقتی بارد بحث مثلا موس... شفرن شده که امامم همین بود. تو همین فضا فاسخه های خدیده که من آدم نمیخوام بخونم یه مدلی داره اجتهاد امام به اجتهاد آقا این مدل اجتهاد امام و اجتهاد آقا یک اجتهاد جواهری مبتنی و مسلمات اصولی حوزه است با تسلط بر همه آراء بزرگان ما الان خودمون داریم به این کار بکنیم عبالت مکاسب رو میخونیم حاشیه مکاسب محقق ناینی مقروم سید یزدی مقروم های خوردی محومه مثلا کی کی کی کی که امام سللا. آقا تو همین خضا حالا فکر آقا که وارد میشین یک دوستتان نمونه را اگه درسن من با آجابا از کردم من این چارچون رو با در یکی که وارده مثل آقا میشونه حتی قدرشان نشد نه ولی این فضا دست فوزرابی یک دفاع مستند به مبنای بزرگان از فتح این کار بسیار بسیار که خطا داشت. قابل ذکر بسیار مهمی است که متد فقهی امام و متد فقهی آقای طرد خود امام ریسول الله تعالی علیه ببین وقتی با آیه قدری میخوان اول اون مؤدبره را میگن بعد میخوان جواب بدن. شما مراجعه کنید به کتاب جامع علما که من آیت الله آقای حاکسید احمد خامساری که بازی با شطرنج را بدونه رحم جایز دیدن یعنی یه جواب بسیار سنتی قطعی بیومده. ما بودن احساسمون احساس من الان اینه در بعضی از جاها وقتی بحثهای فیلی و رسوی مطرح میشه دستگیه فاضل انقلابی ما خالی هستم نمی از این متد اجتهاد جواهری امام و رحبری مطابق با مدل خودشون دفاع این نیاز به دست. باور کنید ولی شما حتماً ببینید فرمانشات آخار تو قناع کتاب قناع آخار ببینید بحثتون بسیار ازش من در آخار در مسائل سلاست امان و سال به و محاده رو ببینید ببینه آنکه خودنه قدیحالی این که ارزی میکنم یعنی یک تسلط بسیار قدی اجتهادی البته خرد کردن مبانی نقد مبانی و جایگزین کردن نظریت یه بسیار بسیار نکته دومی که آقا برای امام قائله همین بحثیست که شما توی جلسه تون داری آقای اعتقاد دیگری بر امام قائله و اون اعتقاد اینه که امام علاوه بر تسلطی که به فطح فطح و مبانی فقهی و اصولی سنتی دارج حوزه داشتن و این هم به باسطه ارتباط قبی با اساطید بزرگی که مثل موش یا مرمای برگردی به سوال مداره تعالی علیه همهش و این بوده امام یک کاری کرده و اون تسیسی نظام فقیه ای بس خیلی از بحث اوله بحث اول ما نه یه بحث سنتی هموزمین این بحث دوم ما رو بینیازم بحث عقل نمی یعنی ما باید بحث عقل اول تکیب خودمون رو با بدنه سنتی یا علم یا روشن کنیم و نشون بدیم که امام این انقلاب ما اینطوریه بحث دوم آقا اینه این بحث رو آقا در دیدار عزای مرس خبرگان دوری قبل البته نه این دوره داشت. داشتن خیلی باز از اون بحثهای عجیده خدا رحمت کنه مرحومه آقای مهدوی کنی را یه نطقی داشت آقا نطقه ایشون کرده مبنای نگاه بسیار عجی بیم تحمیل آقا اینه و نظام هم بر اساسی فرمایش آقا میگم فقیه فقه نظام ما آقا امامه. من هم این که آقای سر خیلی مزوری هم ولی آقای سر من فقیه فقه, فقه نظام نبین آقای سر هم در فقاهتش و فقه نظام متأثر از ایمان من مواردش شهر بردم میدم خیلی خیلی خیلی مهمه سروران عزیز و این نگاه نگاه بسیار بسیار عجیب است. آقا تحبیرشون بینه سابقه فقه سیاسی در شیده سابقه این سابقه عریقیست یک چیز جدید است و آن نظام ساسی و اصاسی میفرست. و این را امام بزرگوار ما انجام داند ادعا و ما قبل از ایشان کسی دیگری از نداره که نظام به وجود بیه آقا نظر مبارشون اینه اول کسی که دو کار کرد یکی در مقام نظر یه نظام فقهی را انداخت یکی این نظام فقیهی را تحقق داخت دو, دو کار کرد امام باید تشکیل حکومت اسلامی ندارد. نه اون بعدی امام اول یه نظام فقیهی درست کرد بر اساس بلایت مفقیه به این بحث از اون بحث های بسیار بسیار اساسی است که آقا برای امام اول کسی که در مقام نظر و در مقام عمل تو امن یک نظام ایجاد کرد امام بزرگوار امام که من سالاری دینی را مطرح مسئله بلایت فقیه را مترح بر اساس این مبنان نظام اسلامی بر سر باشد ما چند این تجربهی در طول تاریخ نداره برشون سفقیه را نداریم بکنن بگن خیلی اونجا کاری در بادرد اکثرشی بود که مردای قاضل غزار خود اما نظام نموند از این نظام اسلامی فقی خبری رو محقق کردکی آمد تو میدون اما این کار دارم. حد اکثر اینجا بزارد. قضاوت به احده است آن هم در حق محق... محقق کرده با آن عظمم. ایشان میشه هم به ایسه قضاوت. نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه برمقنای فقه نیست. ایجاد نظام کاریست که امام انجام داد. همانطور که آقای محلوی در نور خیلی پاس این نگاه. امام دو کار کرده. تق به وجود آوردن یک نظام فقهی. که بهتیه فرو فقیهی را بر اساسی نیزام فقیه استنبال کرد الان میدونید عزیزان من این مسئله که عرض می ما الان در این سیاسی کارم ما خودم الان یکی از شبهاتی جدی در بسید سیاسی که آیا ما دمکراسیمون مردم سالاریمون دموکراسی نخبه باید دموکراسی گردهی ای؟ آیا ای به مرمایه اینکه که بیان رعی یه نخ نخبگان باید انتخاب کنه ابن بعضی از اندیشمندان بر اساس که که مدنا دموکراسی دموقراسی گلده دموکراسی یعنی نماشی دموقراسی نخبگانی باشی میخواید این رو به محتلیت سیاسی و انتظار بگن نباید حکومتش کنن چون دی زرگه بینید از بخشی بسیار بسیار جدی که از یه طرف حیث محددیت سیاسی رو مطرح میکنه از یه طرف این بحث محلوب سالاری رو مورده بحث قرار با بعد اومده نتیجه گرفتی که اگر قرار دموکراسی نخبگانی وجود داشته باشه چرا فقط تو نخبگان فقه ها باشن همه رشته های دانشی باید نخبگانش تو شورای رهبری باشه شبسون نزید <تصفيق> الان بس تو فقه حکمرانی فضای مجازی باز از این دست شکنم چون خودم الان مشکوله این بس هم تو عوضه یا فقه حکمرانی مقامی فقه حکومتی شمیده من هم, هم دو دادشتی تخصصی رو همه آقایی این چند تور کار کردن و خیلی خوشحال شده میخوام چی عرض کنم ببینید ما اینجا یه بخصی داریم این بحث استیاد بسیار مهم که ما یک نظام فقهی بر اساس ولایت مطلقه داشته باشیم به تقریر ما امام بفرماد ولایت فقیه مساله جدیدی نیست صادر از اصل عام مذاهب یعنی که جدید نظام یک نظام فقهی بر اساس این نظریه ولایت امام رضوان رضا علیه علیه در اون مکاتبات معروفشی این بخش برای قدیری خواندم برات که اصرار داره که اصلا فرض کنید با نظام حکومت اسلامی مزرعه بی برده این از اختیارات حاکم فرض کنید حق و تحتیر بشه. بشه فرض کنید یعنی یک نظام فقهی که تو بحث های امام هست که حالا ما بعدا اگر نسیدیم میخوام از آقا دوتو خصوصیت برای فقه خودش و فقه قابل خصوصیت اول تصدوتی این مجموعی فقه و اجتهادی بر مبانی بزرگان فقه و اصول حوزه حوضه و نجده و خورد کردن و نقد کردن و به وجود آبردن نظریات نوع که اون باید شما بتونید کار کنید و نشون بدید خصوصیت دوم نه نظام سازی در یک تحقق نظام بر قرار کردن حکومت اسلامی که آقای اعتقادی داره که امام چون در حکومت اجراش خیلی موفق شد و واقعا عظمتش دنیا گرفت مزدون باقی شد در شناخت نظام اون نظام فقهی اون نظام فرقی حالا برای اساس این نکته که این دو نکته که از کردم تو نظام سازی چون بحث ما الان بیشتر نظام سازی شما با گرایش موضوع جلسی بخصتون گرایش نظام سازی من یک دو نکته مصداقی رو به که مختم اجازه بده و خیلی خستتونم نکنم جلسی پایانیست که هر چقدرشم از کردم موند بیریم این شاده توفیقاتی پیدا بکنیم ادامه. بدیم شما از جاهای مختلف این مسیر بلاختر الحمدودا کار بزرگ و عزیزش من شروع کرد این مجد و با من باقعا از اصلاح اولای رشاد و همکاران عزیز و صدران بزرگی آرام تشکر دارم بسه همیشه پیش قدم در این کار بزرگ عزیزم سرداران عزیزم ببینید دوستان نکته شو بگم توی بحث نظام سازی یکی از کسانی که تو مسئله نظام سازی پیش قدم بود و خدا آقا تو مسئله نظام سالی یه بحثی داره یه بحثی داره که شاید بعد این قلاب سی و ای سالی داره از حوض مطالبه میکنه اقلی ما ولی خودشون قریب 50 سال قبل وارد این بحث شدن حالا ببینید این ای رو که عرض میکنم از حوض مطالبه کرده رو این عبارت قشنگ آقا را خدمتون تبازه که بکنم یه ای بیم یه نکتهی هسته آیا ما وقتی بکنم نظام اصولیمون رو درست کنیم نظام فقهی رو درست کنیم به فلسفه احتیاج داریم نه آقا به جد معتقد حوزه به فلسفه نیست و نباید فلسفه حوزه حوضه پوچ کنه بریم و یه آقا که متعدد که فعلا محل بحث من نیست به جهه آقا میسته دفاع هم میکنه به آقایون هم گفته خیلی مفصل هم گفته منطقا آقا معتقده تو نظام سازی فلسفه نمیتونه مشکل باره هم حوضه فلسفه میخواد من پاسخ به شبه هم باید اما فلسفه هم سپای خوبی مثل خود ایشون مثل آقای متعرید مثل آقای جمادی مثل استاد مزرگون آیتولای مؤمنی این شایردهای مهم امام همه مسلط ندن هم. حتی های خاصه میگو من مجده نیستم ولی خود بلد هم. از امام یاد گرفت ولی آقای اعتقادی داره خیلی اعتقاد زیبایی آقا اعتقادش اینه اونی که میتونه مشکل ما رو حل کنه اینه که نگاه فلسفی ما امتداد قداره ولی خودی ایشون در امتداد دادن نگاه فلسفی یعنی بیزا دارم و به شکل مبسوطی بود الان من میبین بعد فهم از مجردشون چه در تفسیر چه در فقد با این نگاهت امتدادی اولاد میکن خیلی از مشکلات مشکلاتونیشونی رو گفت میکن من مدعا میده حالا ببینید حالا مطلب رو تبیر آقا این فلسفه اسلامی فقل اکبر است پایه دین است مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی است لذا باید گسترش به استحکام پیدا کند و برمید به این به کار و تلاش احتیاج دارند اما و توزیع خیلی توضیحاتی دارند من نمیخونم میرسن به اینجا نقص فلسفه ما این نیست که ذهنیست فلسفه طبعاً با ذهن و عقل سر و کار نقص فلسفه ما نقص فلسفه ما این است که آن ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی نداره. بزن نمیتونه نظام ساز باشد آقا اعتقادشون اینه امام نظامین رو که به وجود آورد برده از بحث میکنیم یه نظامیست که پشتوانش پشتوانش یه اصول قدیلی سنتی مستند به فلسفه هست کار آقای درسته کار آقای درسته خدا شاهده من در یه جایی یه اینده زد فلسفه بودم دادم به یه شاگردام شایدام بری توی فقه موسوعه فقهای آقای شهر تا قائده فلسفی هست بری در بیر آقا رفتر اینه دختش دردن اغوردن اغوردن خویی دو وقتی از مثلا مالکیت بخص کنه اضافه اشراعی صدرانی اون قد قشن توضیح میده تا تو اعماله بهشون اصلا متحیل مونده آقا معتقله، ببینید درسته اون درسته، اون نگرش فلسطی باید پشتبادی اصول داره حوزه باشه این حرف خوبیه هم آقای سخت استفاده کرده، هم از لدم شاگردان محقق نایدی و من خلاص محقق اسپانی که خدای خوبی باشه آقای مزفر باشه حتی آخون و شاگردای آخون کفایه اعلام باشه علم. خود شیخی شیخ میدونید در مسئله استسحاب عدم ازلی که همه بعدن نظرات آقا را برستم تو یکی یکی چطور از بساری اصولی آقا بگم ببینید لذت ببرید خیلی قوی کار و فرق عدم مضاف با خلاص سند تحصیلی و مردوله را و سرحت جریان استسحاب را و وحدت قضیه متیقنه و مشکلکه را چون اشکالی که اونجا وجود داره اینه شیخ عالی ورود کرده آقا میفرمون این خیلی مهمه. این بسیار بسیار لازم. اما تا امتداد پیدا نکنه نظام ساز نیست. تا انتدا پیدا نکنه نظام ساز نیست. من این عبارت آقا رو میخونم یه دیگه دیگه‌ای ما داریم دیگه اونا فقط لجنش کش. اگه شما سخت بشه جایی نگفتم. اثباتش که وقت دیگه است. اما این मुद्देای آقا رو ببینید آقا می فلسفه نیاز داریم استحقام نظام فکری ما و پاسخش و شبهات ما بسیار لازمه برید تو به اینو کنید اونم ذهنی و عقلی مشکل نداره اما این نگاه میتونه نگرش فلسفی مستنده این نظام اصولی ما باشه اشکال نداره میتونه نگرش فلسفی مستنده درست دردن استحاب عدم عزلی باشه اشکال نداره تو مثلا این مرد بخص داره محقق نائینی، بخص داره محقق خوبی بخص داره آخونده خراسانی آخرش هم برمیگرده که اتحاد قضیه متیده این و مشکل سر از کجا در میاد؟ آیا صالبی محسله و موجب به محدودتون مقمول اقلن یکی یک اروفن دوتان یا یکی؟ خیلی بود بخص کنید میخونیم اوارد آقا به اینا کامل بسیدی کردیم اما آقا اعتقاد آقای خیلی اعتقاد من واقعا هنه این مرد بزرگیه و مزلومه آقا دارن نقصش اینه که فلسفه، نقص فلسفه ما اینست که این زهریت امتدار سیاسی و اجتماعی ندارد فکر صفحه قلبی برای همه مسائل زندگی کم و بیش تکلیف معیل میکنن سیستم اجتماعی معیل میکنن سیستم سیاسی معیل میکنن وزن حکومت را معیل میکنن کیفیت ایفیت مردم با هم دیگر را هم بسید مکراسی اما فنسفه ما به طور کنید در ذهنیات مجهرت باقی می مانند و امتداد پیدا نمی کنند. شما بیادید این امتداد را تعمیل کنید و این ممکن است بعد خودشون مثال این زنند. کاری که خودشون پنجه سال قبط، پنجه, پنجه سال قبط، چه سال قبط باقی هم دادیم کنند. می دهند. خیلی عالی این کار این من و خدا شارد من به این هایی که می رسن ناراحت می این در نه چون رخبره ای امتلاب خدا تو شاردی نه یه حکیبه قدیدیه یه تو مسلط ببینید نظراتش مونده تو اوزه کار نمیشه ببینید تحبیر آقای چیه که خود توحید یک مرنای فلسفی به یک اندیشه است اما ببینید این توحید یک ای ای امتلاب اجتماعی و سیاسی دارد باور کنید آقایان طلا اساتید فزران عزیزان بزرگ من اولی بار با مقاله آقا اومدم روزه من کلاس دو به دبیر بیر ساله اشته ریازی دنسی کتاب رسید دستم دیگاه توحیدی خدا یا شاهدی که اون کتاب سه مقاله مهم بود یه مقاله از شهید بود یه مقاله از شهید بودم یه مقاله از آقا آقا مقاله شید بود بوح توحید نفتی عبودیت غیر خدا آقا توحید را نه از سر فنسدی اما وقتی توحید کتاب و سنت توحید ابتدایی است که نفی سلطه میکنه نفی عبودیت غیر خدا میکنه نظام توحیدی درست میشه حاکمیت اختیارات ببینید این, که دفتر نشه آثار خودشون این کار اسلام الحمدلله داخل نشرو آصا آقا پدر جان خودش این کردن سی سال پیش با موسی گفتم من این کارو کوی دادم البته من میدونم کار زیاد شده اما اینجا نمیزین ببینید سر من بزرگاه عبارت این خیلی آدم این توحید یکی امتدال لا اله الله فقط در تصورات و فقوص فلسفی و عقلی حسر و زیدانی نمیمانند وارد جامعه می شود تکریف حاکم را تکریف محکوم را تکلیف مردم را بعد آقا توضیح می توان در میان مبانی موجود فلسفی این مهمی پیدا کرد که اگر بسترش داده شود و تحمیق گردن جریانهای بسیار فردازی را در خارج از قرید زیندیت به وجود میاورد و تکلیف جامعه، حکومت و اقتصاد را معیم بودن خود شما تو این نگاه نگاه کنید با نگاه یه فقیه که میگه ما این. دنبال اینها ها بگردید این نقاط را مشخص و رویشان کار کنید آنگاه یک نگاه ابتدادی درست میشه میتونه فقی سیاسی ما رو هم ما الان تو مشکل من همینیسی خود بنده رو در قرد کرده من یک گفت هم آقایی وصل یه مرگون فلسطی داره یه ابتدادی داره برای وصل دقیقه ووش مسلومی نگاه آقا که من دارم عبارت برای تو میخونم عمدنم عبارت میخونم ها. که ببینید هیچ من استمباط خودم نیست عبارت سید مزمون خود اینشون این کار کرده شاید متحریم بسیار خوب این کار انجام داده استاد ناتولای مصباح خیلی خوبی کار انجام داده بعد آدم خوبه کارهای شایدای امامو تو بحثهای ابتدادی کار آقای متحقیل کار آقای مسباب کار آقای جمالدی کار آقای بزنه کنارم و من نشورتون بیدم شاید کار آقاست کار بعدی باره تر این که میگم شاید چون نظر خودم شما مختاری ما تو بحث نظام سازی باید یک حالا من یه مدعایی دارم که این نظامسازی باید بر اساس باشه یا ارفان آقا هم مترمی که با ارفان با من میگم نه این نظام سازی که آقا از بر اساس ارفان امام چرا؟ چون امام همین نظامسازی را انجام داده آدرس نظامسازی امام رو نمیدن تا جلسه بعد اندر نمیدن. ولی عبارت آقا مال همین. از بختت وجود و بسیط الحقیقه کلوال از مبانی ملاسر را اگر نگویم این همه اینها از بسیاری از اینها میشود یک دستگاه فلسفه اجتماعی سیاسی در اختصالی درست کرد فضلا از آن فلسفه های موزاق متاسفانه آقا اینو مطالبه کردم قوضه در دنبال فلسفه موزاق آقا میگه من که فلسفه موزاق خوبه فلسفه موزاق فلسفه از امتلاع است. ببینید ما حرف داریم عرض من رو من دیگه اینجا می هم دیگه موندم دیدم ساعت شیشو خورده ای شد هم من مخوام شما رو خسته نکنم هم شما خسته شدید از توب هم دریگه بودید و روز پایانی این برنامه است یه جمله شاهده دیگه میرم دیگه مسادقش رو همین قبائه رو که هست هدم تو بحث نظام سازی از بیانات آقا چی تو بحث اصول و فقه سنتی ما با مقانیشون که ایشون کشن کجا گفته اطلاق تو معنای حرفی جار داره خلافن به محقق نائمی استرسا عدم عزلی روسته اما فلان اشکال بهش پارده این بحث فلسفیش نه کجا چطور رو شده اگه تو بحثای امان بسیار بسیار مسلطه من مصادیق رو برایتون براتون بگم و تحلیل کنم نمی گنجه من چارچوم رو میتونستم بگم این جمله آخر رو فقط عرض می کنم خدا رحمت کنه آیم ترار آقا آمدن قبول سال هفتاد و نو بنزم خدای هفتاد و نو کجا الان کجا آمدن تو حوض اعلام کرد گفتم ببینید هر تمدونی وقتی میخواد خواد شهر بگیره تو انصور رازم یکی توبید فکر یکی تربیت کار برای کردم گرفتن چرا متحدی تونست تولید فکر کنم؟ آقای متحدید نگاه های استادش امام رو رو توزه با نگاه امتدادی فلسفه هگر و نهده با نگاه امتدادی اقتصاد مارکسیسی و نهده با نگاه امتدادی فلسفه و نظام به زن نرش. فقه قول مرحب فقه قول فلان همه رو ببینید چون این نگاه آقا دقیق دار حاجه ما این نگاه این محقق نشه و مبانیش و هر موضوعی در نیا توی اون نظام سازی که آقا داره تحقیق میکنه خیلی توفیق بدانه میکن ولو مسندت باشید به مبانی گذشته که باید رو باشید اینم باید ثابت کنید آقا موجود دارن آدو چرا موفق هم تعبیرش اینه میگن آقای متحی روز روزو بلد بود چون سوال بلد بود مجتهد بود میرفت بر اساس شناخت او به از متن استنباط میکرد هر کس نگاه امتدادیش بشه استنباط متنیش میره وارد لذا آقا اعتقاد داره امامي طباطبایی رسول الله صلی الله علیه و آله که تو میذ علیثا بنویسه و آقا معتقد آیتماتبایی از مبانی انقلاب رو من از آقا طباطبایی یاد گرفتم. چون بیمه مادیاته والد ما آقا نقد میکنه و من مبا... میگه چرا چون نگاه تو نگاه علمان تو الیزا نمیچادی؟ آقا فهم از متن یعنی فهم از کتاب و سنت بدون نگاه انتقادی و بدون شناخت سوال روز نمی تونه نظام ساز بشه و مشکل فهم مضاف و و نمیتونه مشکل علوم انسانی مرا حل کنه. یک منظومه داره. من واقعا تشکر می در آخر هرائزم از این تلاش، تلاش بسیار ارزشمندی است. اولا، ولی شروع خیلی خوبی است. این مسیر با همین قبط ادامه پیدا کنه، مراحلش تکمیل بشه. خود بنده که چند سالی سنید دو تختوبار مبانی فقه حکومتی. یعنی فقه حکومتی، فقهی، فقه نظامساز، یه مبانی داره. این مبانی بهتری در واقع قائلشون امامه و یکی از بهترین شارهانشون ره برماظره. اقتضام میکنی یک اصول و یک دقه متنی درست در البته فلیم کلام تتم و تو نشان را ستم رو به فصل ادایی برد ترا به عظمت وجود مقدس زیدون آبدین ترا به عظمت سکر دوست آجدین ترا به عظمت والد مکرمش شهدای بزنگوار این بزنگوار خدایا امام ما، شهدای ما، مراجع مازی ما را تحت الهایت و اشراف و توجهات سید الشهدا ان در اعلا اندیه محمل اهل بیت بگردان. و گوارا همه خدمت گذاران بدین مراجع بزرگوار ما. اساتید زحمتکش و سوزان ما تلاشتران این ارسیل بسیار مهم و واقعا جای تقدیر داره از دوستادمون عزیزان اون صدیق بسیار عزیز شبرمم از کاری الله رشاد و همه همکاران عزیزشون حاج آقای ها رو که ما از قدیم ساده تیرش قد داریم خدمت ایشون و همه همکارانشون و بدگاه از انایات امام زمان مند بگرمان و سایی این فقیحه مزلومی که آقا و الله بزرگتر از اوست. روز نمان به خودم بود بعد از افتاری مسئولان نظام خدایی ها گریه می و می گفت خدایی سایه ایشون رو تا ضرور زمان و سر امت اسلام مستدام بدار و پرچم این حکومت مورانی را به عظمت و شوحدى این نظام و این انقلاب در همه مناطق به دست کفایت امام زمان برسا و سلام علیکم و بركاته الله و آل محمد اجازه زحمت دادید ببخشید آقا یا خدا پس آجو nous sommes arrivés sur la droite 42 28 42 28 39 39 39